ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الجما بغية الله في الأراضين نتغرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مدل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان رحمة الله وبركاته اوسیکم عباد الله و نفسی به تقبل الله خداوند متعال برای درک حقائق و تشخیص راه از بیراهه به ما عقل داده است اما گاهی در اثر طوفان هوا و هوس و های پوچ و حرس و تمع بیمورد چنان قباری بلند میشه که مانع دید عقل میشه و این تقواست که این قبارها و حجابها را فرو نشاند جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد قرآن می فرماید الله و یعلم الله تقوای الهی پیشه کنید خداوند به شما می آموزد. در جایی و فضایی که دینداری و تقوا جایگاهی نداره هوسهای آنی لذت مادی محور قرار گرفتند صدای دین و عقل به گوش کسی نمیرسه و اولیاء دین نسبت به این خطر هشدار دادند از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت شده از که فرمودن قاعت تفت تفصد العقل در روایت دیگری فرمودن غلبت الحوا یفصد الدین و العقل. دین و عقل آدمی در میان کشاکش هوای نفس و شهوت از میان میرود. در بحث تفسیر در سوره مبارکه ممتحنه به آیه ششم می رسیم. بالله من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فیهم اسره حسنه لمن کان یرج الله و اليوم الاخر، زمان یت벌ف ان الله هو الغنی حمید یعنی قطعاً برای شما در رفتار حضرت ابراهیم علیه السلام و همراهانشون سرمشق نیکوست برای کسی که به خدا و روز قیامت امید داره و کسی هم که رو بر, بر بداند که خداوند خود بینیاز و ستوده است در این آیه خداوند با سراحت از مسلمانها خواسته که با تأسی به حضرت ابراهیم علیه السلام و پیروانش به طور قاطع با کفار و مشرکین قطع رابطه کنند و از جمله لمن کان اجر الله ولیوم الاخر استفاده میشه که هرچند حضرت ابراهیم الگو برای همگان هستند ولی تنها کسانی از این الگو درس میگیرند که از روح معنویت یعنی امید به رحمت حق و ایمان به قیامت برخوردار باشند امیدواری به رحمت خدا و قیامت است که انسان را به دنبال الگو و اصوه ای همچون حضرت ابراهیم میکشاند و متقابلا نارسایه های معنوی باورهای نادرست مانع در ساموزی انسان از الگوهای شایسته است ولذا در ادامه آیه ششم در همین سوره ممتحنه فرمود من یه فان فَا الله خُوَلْ غَنِيِّ الحمید کسانی که از سیره و روش حضرت ابراهیم در براعت جستن از کفار و مشرکین روی برمیگردونند بدانند که خداوند غنی و بینیاز و ستوده است اینها نمیتونند با این رویگردانی به خداوند متعال آسیبی برسونند و این سازشکاران با کفار و مشرکین و دشمنان خدا بدانند که براعت و بیزاری جستن از دشمنان خدا سودی برای خدا نداره بلکه اجراع براعت از مشرکان و اظهار براعت از مشرکان و نحی از مودت و دوستی با اونها صد در صد در جهت مساله خود مؤمنانه، نه خدابند متعال نکته قابل تذکر و هشدار دهنده در زید این آیه این است که با توجه به اینکه انسان در زندگی دنیای خودش نمیتواند بدون الگو زندگی کنه اگر کسی رفت به دنبال قصفه حسن بدون شک، این اثر خیلی خودش رو خواهد گذاشت و الا اگر دنبال اصفه حسن نریم ما بدانید که به دنبال اصفه سیعه خواهیم رفت اونگاه در روز قیامت کسانی که الگوها و اصفه بدی انتخاب کردند در آن روزی که یا اومل نام گرفته این اشخاص با اندوح و حسرت دست های خود را به دندان میگذن که چرا در دنیا به عنوان الگو و اصفه دنبال شخصیتی مانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اعمی اطفار علیه نرفتن در آن روز با حسرت میگن یا لیتن اتخذ تو مع رسوله سبیلا ای کاش همراه این پیامبر راهی رو به سوی حق بر و در همین آیه کریمه درباره دنبال روی از اصلاهای فاسد و ستمگر میفرماید یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا ای کاش فلانی رو من دوست خودم نگرفته بودم پروردگارا ما را در قلگوگیری از پیامبر عظیم و شن و اهل بیت اسمت و تهارت هدایت و حمایت بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکله کفو من احد صدق الله العلي العظیم اللهم صلّ على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نؤمن به و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعليه الطاهرين صلّى على مولانا علي أمير المؤمنين و بسی رسول رب العالمین، على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمین، صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة أجمعين، صلّى على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العبادین، محمد بن علي الباقر وجعلفري بن محمد الصادق، و موسى بن جعفر الكاظم و بن موسى المرتضى. ومحمد بن علي الجباب وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والخجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا بنت ولي الله السلام علیک یا اختم ولی الله السلام علیک یا عمته ولی الله السلام علیک یا بنت موسى بن جعفر و رحمت الله و برکات عباد الله و نفسی بتقوى الله یکی از اختصاصات متقین آن است که خدا فقط اعمال و عبادات متقین رو قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین همه ما اعمال و عباداتی داریم دوست داریم که خداون اونها رو بپذیره و زخیره قبر و قیامت ما قرار بده پس بدانیم که در نزد خدا روح اعمال ارزش داره وقتی روح عمل ارزشمند باشه دیگه مقدار اعمال چندان مهم نیست بلکه اندک اون هم در نزد خدا بسیار محسوب میشه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن لا یقل عمل مع تقوی و کیفه یقل ما یتقبل هیچ عملی همراه با تقوا اندک نیست چگونه چیزی که قبول میشه کم شمرده شود امروز جمعه دهام ربیع الاخر بر حسب آن که در تقویم ذکر شده جان سوز کریمی الله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه که خدمت اهل بیت علیهم السلام و شما مردم عزیز و نمازگذار به خصوص قومی های عزیز تصدیت ارز می کند نکته مهم درباره آن حضرت این است که سالها قبل از تولد حضرت معصوم سلام الله علیه ها امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند که بهش دارای هشت در است که سه در آن از قم باز می سپس فرمودند در آن شهر زنی از اولاد من رحلت می کند که اسمش فاطمه است و او دختر بن جعفر است و به شفاعت او تمام شیعیان داخل بهشت میشوند بهار جلد پنج و هفت سخه دی بیست و, بیست و هشت و در ارزش زیارت حضرت معصور سلام الله علیه ها امام صادق فرمودند فمنظاره ها وجبت لحل جنه امام صادق درباره خود شهر غم هم فرمودند اِنَّ لَنَا حَرَمَنْ وَهُوَا قُمْ در روایت دیگر فرمودند اَلَا اِنَّ حَرَمِي و حرم اولدی من بعدی قم مجالس المؤمنین جلد یک صفحه 83 عزیزان با این مقام و رتبه که خداوند به قوم و حرم اهل بیت علیهم السلام داده شیطان و جنود او از ابتدا تا کنون به قم تمع دارند به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تیرهای زهراگین دشمنان بیشتر به سوی این شهر و فرهنگ اسلام و انقلاب نشانه رفته. اونها طرحهای گسترده‌ای سامان یافته برای گسترش مظاهر فساد در این شهر اهل بیت دارند. باید همه علما، روحانیون، مسئولین، مردم عزیز، خانواده ها کسبه و بازاریان با اقدامی هماهنگ جلوی این توطئه دشمن را بگیرند به همین منظور برنامهای با همت جمعی شده که به زودی ان الله اجرایی خواهد شد شنبه 9 دی روز بسیرت و میستاق امت با ولایت است درباره 9 دی دو بحث مهم وجود دارد. یک ارائه تحلیلی از شک جریان دی دو ابرات های امروز از هادسای دی اما تحلیل دی باید گفت دی از جنس انقلاب سال 56 بود. نهدي از جنس حضور آشورایی ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان است در بازخوانی روز 9 دی به سه مطلب مهم می پردازیم. یک عناصر سازنده فتنه سال 88 دو راه تشخیص فتنه سه وظائف ما در برابر فتنه اما مطلب اول فتنه سال 88 چگونه به وجود آمد عناصری سازنده آن چه بود نسبت به عناصر فتنه سال 88 صریحا میگویم که چند عامل در داشت یک دشمنان قسم خورده انقلاب یعنی دولت متجاوز و جنایتکار آمریکا و سهیونیس های قاصد و قاتل آملان اصلی فتنه سال 88 بودن این دو رژیم از ابتدای پیروزی انقلاب تر های شیطانی برای براندازی انقلاب داشتند. هیچگاه دست از این توطعه و فتنه هم بر نمی دارند. نکتی قابل توجه برای شما مردم عزیز آنکه که علاوه بر کین توزیها اینها تا کنون دقیقا هر ده سال یک بار یک فتنه و آشوبی را طراحی و اجرایی کردند. از سال شست و تا هفتاد از سال هفتاد و هشت تا هشتاد و هشت و اکنون به حوش باشید از 88 تا 98 در اندیشه فتنه دیگری هستند مراقب باشید آن سال دوم در فتنه سال 88 پنهان شدن چهره دشمنان اصلی در پشت سر ادهی فریب خورده است و سردمداران فتنه یعنی آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل مطالبات خودشون رو از زبان این عناصر فریب خورده بیان کردند. سومین عنصر سازنده فتنه 88 عبارت بود از غبار آلوده کردن فضای اجتماعی. این فضا در اثر ترکیب حق و باطل به وجود میاد و نتیجه آن مشتبه شدن فتنه بر حق جویان و نیروه های خودیست چهارمین انصار سازنده فتنه عبارت از, از سطحینگری آمیانه به مسائل و حوادث میدانید که در فتنه های اجتماعی که نوعاً با اردوکشی خیابانی همراه هست ترراهان و سازندگان اصلی فتنه پیاده نظامی رو به کف خیابانه ها میکشانند که اینها هیچ خبری از اصل فتنه طراحان فتنه پشت فرده های آنها اهداف آنها ندارند. و آنها اونقدر بیخبرند که نمیدونند با این آشوبشان چه خسارتی به حیثیت نظام و کشورشون چه خسارتی به اجتماعشون و مسائل سیاسی و اقتصادی وارد میکنند. اما مطلب دوم راه تشخیص فده چیست؟ یک توجه به شاخصها و معیارهایی که برای تشخیص حق از باطل وجود دارد مردم عزیز خداوند متعال در همه این مراحل حجت رو بر مردم تمام می کند از جمله در زمان ما فرمایشات و موضع گیری های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدت جلد معیار از باطله چون مواضع رهبری برگرفته از قرآن و سیره و کلام اهل بیت علیه مسلام است امام سجاد علیه السلام می صر بایان هل اکمن لیس له حکیم یرشدو بهار جلد 75 صفحه هشت کسی که ارشاد کننده حکیمی نداشته باشه طلاق میشه راه دوم برای تشخیص فتنه مراقبت عمومی و تقوای الهی است قران میفرماید یا ای الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا با سلاح تقوا میشه از ها عبور کرد همانگونه که خداوند به ما عمر فرمود وَتَّقُو فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَبُ مِنْكُمْ خاصه با سلاح تقوی از فتنه ای که خشکتر رو با هم میسوزانه پرهیز کنید فتنه مثل یک مه غلیز فزار و نامشخص میکنه در چنین وضعیتی چراغ مهشکن لازم است که همان بسیرت است و اما مطلب سوم درباره وظائف ما در مقابل فتنه هنگامی که فتنه جامعه رو تهدید میکنه اهل بسیرت نباید گوشه گیری کنند نباید ساکت باشند وقتی فتنه کیان اسلام و انقلاب رو تهدید میکنه دو وظیفه مهم بر دوش همه است اولا مردم باید بین خودشون و فتنگران و خریب مرزبندی مرز بندی کنند حضور به موقع اهل ایمان لازم است در فتنه 88 به الله با حضور به موقع و به اندازه آهاد مردم و به فضل الهی نقشه توتگران نقشه آب شد و اما عبرت های امروز آخرین بخش این تحلیل اختصاص دارد به عبرت هایی که اکنون باید از فتنه ها بگیریم عبرت اول همه مردم بدانند که مسائل و مشکلات و بحرانهای های کشور با وجود ولی فقیه و رهبری حکیم و دوراندیش و استکبار ستیز هر به بمبست نخواهد رسید. ببرت دوم برای جلوگیری از شکلگیری های فتنه که مورد سو استفاده دشمنان نظام قرار میگیره مسئولان کشور باید مطالبات به حق مردم در حد حل مشکلاتشون رو جدی بگیرند رئیس جمهور محترم از سخنان مقام معظم رهبری تشکر کردند ما هم از رئیس جمهور میخواهیم که در عمل بیش از پیش این تشکر عملی خودشون رو به مرحله ظهور و بروز بگذارن به سوم این که اولویت تأکید بر تولید ملی و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هرگز نباید فراموش بشه چرا با واردات بی رویه در درباره اجناس خارجی ضربه به تولیدات ملی میزنید با این کار تخریبی در چه فکری هستید به نفع چه کسی کار میکنید؟ چرا به تولید کشور ضربه و خسارت وارد میکنید چرا از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی رسمی به طور جدی برخورد نمیکنید رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 96 در حرم مطهر رضوی بر تولید ملی و تولید داخلی و آثار و فواید آن تاکید داشتند بازخوانی فرمایشات آقا بر قواه سگانه و مسئولان کشور ضروری است آیا میدانید که یکی از برکات توجه به تولید ملی و داخلی از بین بردن بسترهای فتنه است؟ آیا میدانید که ضرب وارد کردن بر تولید ملی به برای فتنه جدیدی است؟ بنابراین دولت و مجلس باید در بودجریزی به این مسئله مهم توجه کافی داشته باشد آخرین مطلب و تحلیل مقام معظم رهبری در دیدار که مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور با ایشون داشتن مطالب بسیار مهمی رو مطرح کردند به علت کمی وقت فرصت تحلیل همه فرمایشات ایشون نیست در این قسمت از خطبه دوم به تحلیل تقسیم بندی هایی که ایشان داشتن می پردازم. ایشان مجموعه دوگانه هایی را مطرح کردند که حائز اهمیت یک سیاست دینی و دین سیاسی سیاست دینی یعنی سیاستی که خواستگاهش تعبد و تقوا و فقهه ولی دین سیاسی این از که کسی برای رسیدن با اهداف پست و حقیر سیاسی دین رو در جهت منافع شخصی خودش و جناه خودش تفسیر کنه دو انقلابی گری و انقلابی نمایی انقلابی گری آن است که انسان در چارچوب اسلام و مکتب اهل بیت علیهم و, و قانون اساسی و ولایت فقیه حرکت کنه و در مقابل دشمن بی‌استد تلاش کند، کوشش کند، نقاط ضعف رو برطرف کند ولی انقلابی نمایی، یعنی پر پرعدعایی در عوض عمل کردن شعار بدن لذا مدیران فعلی و قبلی اگر میخوان انقلابی عمل کنند باید به مردم بگویند که در دوران مدیریت خود چه کردن و چه میکنند نه آنکه مدعی باشند گانه سومی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود از موضع نظام سخنگفتن یا نقش اپوزیسیون بازی کردن کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیارشون بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیارشون هست وقتی انتقاد میکنند باید جایگاه خودشون مشخص کنن آیا از موضع نظام سخن میگن یا از موضع دشمن اگر از موضع نظام صحبت میکنن باید پاسخ بدن که در دوران مدیریت خودشون چه کردن ولی اپوزیسیون بزرگ نمایی میکنه مشکلات رو بزرگ جلوه میده، سیاه نمایی میکنه باهده دیگران میگذره مشکلات رو کسی که یکی دهه همه کاری کشور باشه و در دهه بعد تبدیل به مخالفهان کشور بشه این در جهت خواست دشمن حرکت میکنه چه بداند چه نداند دوگانه چهارمی که در فرمایشاتیشون ایشون بود نقد و نقد پذیری واجب است اما تهمت و لجن پراکنی حرام است باید از خدمات همه مدیران جمهوری اسلامی ایران از ابتداد تا کنون تشکر و قدردانی کرد و نسبت به صدماتی هم که زده اند، نقد مسئولانه و منصفانه و عاقلانه کرد دو مطلب کتا، چهارده همه دیماه سالگرد عنوانگزاری مقام معظم رهبری برای نماز جمعه به عنوان قرارگاه نماز جمعه، قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق هست هدف از این نامگزاری اون بود که نماز جمعه در جایگاه اصلی خودش که محل نشر معارف قرآن و اطرت و بصیرت افضایی و معنویت و تأمین نیاز مؤمنین در ارساهای دینی و دنیاییست قرار بگیره و تلاش همه ما تحقق بخش این هدف مهم هست آخرین نکته هفتهی که در اون قرار داریم سوم تا نه دیما هفته سبت احوال هست که خدمات ارزشمندی به ملت ارائه می کنند شایسته قدانی هستند در حال حاضر پروژه کارت هوشمند ملی توسط این سازمان در حال انجام هست بنده از همین جایگاه از آهاد مردم مؤمن و انقلابی تقاضا میکنم نسبت به اخذ کارت هوشمند ملی اقدام کنند تا بسترهای ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم هرچه چه سریعتر آماده بشه ان شاءالله احوال هم ان سعی کنند سهولت هرچی بیشتری در ادامه خدمات برای مردم داشته باشند پروردگار ما را در شناخت اهداف انقلاب به حمایت از اسلام و انقلاب یاری بفرما بدخواهان و توتعگران را رسوا و منزوی و نابود بفرما قراج امام زمان را برسان انقلاب ما را به انقلاب جهانی امام مهدی متصل بگردان خدمت اسلام و انقلاب و در رأس آنها مقام معظم رهبری معید و مستدام بدار روح متحر امام اروح متحر شهیدان مراجع مازین با اولیاد محشور بفرما مریزان و جانبازان اسلام شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمت تو بر ما نازل بگردان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمستمات الاحياء منهم والاموات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته